با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و مجریان گرامی تلویزیون رنگین کمان بخش بیست م گفتارم در باره کسروی رو شروع میکنم در بخش قبلی ما به اینجا رسیدیم که وارد فاز قتل کسروی شدیم و از این بخش به بعد بنده میخوام روشن کنم که کسوی رو چگونه کشتم در این بخش ها کتاب هایی که من از آنها استفاده کردم که نوشته یک است با خود دارم و اینا رو قبلا معرفی می‌کنم و هر مطلبی رو که من میگویم در داخل این کتاب ها نهفته است این ای منظوره به دلیله که سخنی بدون سند بنده در این سخنانم ارائه ندادم و نمیدهم و نخواهم داد خب کتاب هایی که من امروز معرفی می‌کنم یکی دفاعیات احمد کسرویه دفاعیات احمد کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی این کتاب تاریخ بله در پاریس چاپ شده به وسیله خاوران چاپ شده و در حدود 106 صفحه است و در این کتاب کسروی سخنان فراوانی در مورد زندگانی و فساد دیگران بیان کرده کتاب دومی که استفاده خواهم کرد استفاده کردم یعنی مطالبم رو از اون تو یادداشت کردم کتابیش به نام دادگاه این کتاب رو در گذشته هم بخش قبلی یا دو... یکی دو بخش قبلتر این رو ارائه کردم حضورتون این کتاب دادگاه یکی از مهمترین کتاب های کریش البته متاسفانه در این کتاب کری اینو نوشته روشن کنه که چرا داره کتاب سوزی میکنه. هیچ گونه از این مطلب از این عمل نه من و نه هیچ کس دیگه نمیتونونه دفاع بکنه از کتاب سوزی یکی از کارهای زشت و بد کسروی بود. ولی در عین حال مطالب فراوانی در این داخل در باخت این. کتاب بیان کرده است اون که من دارم تاریخ نشر 1357 تهران چاپ چهارمه و حضورتون عرض کنم که در حقیقت 64 صفحه است کتاب دیگری دارم خدمتتون به ترتیب در صوی زمانی که رضا شاه رفت و فساد در جامعه فراوانتر شد بلبشویی زیاد شد کاشایی بارها گفتم در سخنان قبلی با مشکلات فراوانی روبرو شد این مرد حاضر نبود فساد و بلبشویی و به هم جامعه رو بدونه و باز خواهم گفت تا اون تاریخ تا تاریخ قبل از عزوشاه کسروی کمتر به مذهب شیعه سخن گفت در اون باره مطرح میکرد ولی از 2320 به بعد به لحاظ اینکه دوباره این ملایان به میدان آمدن دوباره این سنت های قشیر رو به میان کشیدند و کسروی فریادش دادش بالاتر رفت بر علیه روحانیان و بر علیه خودشیه از کتابی شروع کرد که این رو هم باز خدمتتون ارائه کردم به نام در پیرامون اسلام این کتاب یادمون باشد من البته کتاب خودم رو مثلا از بین بردم 96 صفحه هست این کتاب که در از این هم مطلب خواهم گفت یکی از کتاب ها است که موجب بیشتر مرگ کسروی این بود که به صلاح مکمل این کتابیست بخوانید و داوری کنید که آن را هم و امروز نایی بردم در کنارشه پشت سر آن کتاب صوفیگری رو نوشت کسری این کتاب شیعیگری حضورتون از کم اون که که من دارم تصورم می کنم همین چاب های ابتدائی باشه. باشه اگر هم در زنده بودن کسبی نباشه همون سالها باشه برای که تاریخ نشش و یا نشده ولی 121 صفحه است پس از کتابش ایگری کتاب صوفیگری رو نوشت باز در این مورد مطالب فراوانی نوشته این کتاب هم باز طبق معمول متاسفانه تاریخ انتشار نداره و هفتاد و صفحه است کتاب بهایگری رو نوشت بعد از آن که خب در این کتاب دوباره به دشعی و تاخت این کتاب از جاب های اولیه هست بدون تاریخ 124-125 صفحه است و بالاخره کتاب ور بنیاد که در این مورد که از روی مدعی پیغمبری است و اول بگم این کتاب چاپ پنجمه خرداد 1348 منتشر شده و تعداد صفحاتش دیدیست و حضورتون کنم که و و هشت، نه، سی من بارها صحبت کردم سخن به درازا نکشد وقتی میگوییم کسردی مدعی پیغمبری بود کسردی پیغمبری رو به انوان نماینده خدا نمیدونست هر انسانی میتونست پیغمبر باشه بیشتر هدفش این بود که اصلاحگرا اگر باشی. ولی معتقد بود خدا هم حمایت میکنه کمک میکنه کسانی به خداوند اعتقاد داشت بلا اگر اینجا ما میگیم دایی پیغمبری میکرد قانون میگذاشت نه در این به صلاح چهارچوبی که با خدا در تماس بود نه خودش رو اصلاحگرامی دونست و شروع کرده بود مطالبی رو مطرح کردن برای جامعه به نام اصلاحات این بود پیغمبریش و این است که بیشتر برمیگردن میگن کسری مدعی پیغمبری بوده به هر حال من در اینجا خاتمه میدم بعد برمیگردم دوزورتون مطلب بخش 27 رو شروع کنم اصل در سخنانم عرض کردم اصل مطلبی که پیش اومد بعد از رفتن رزا شاه در گیری کسروی با آلمان دین بود ما میگیم دو کسروی از سال 1316 گفتیم و بارها گفتیم با تعلیف کتاب در راه رستگاری و سپس در 1319 با نوشتن مقالاتی در پیمان ضمن مطرح کردن پلیدی های اجتماعی نورد با خرافات دینی را پایه مبارزات خیش قرار داد و از آن تاریخ به عنوان اصلاحگر دینی در مجامع معروف گردیده بود لیکن در مدت انتقاد و در این مدت که از مذهب انتقاد میکرد محدود بود به برخی از رفتارهای شیعان از قبیل ازاداری از های تو با قم زنی و سین زنی و غیره و یا برخی از روزخانی و نیز پرستش گنبت ها به قول خودش این قبیل انتقادات زیاد موجب رنگش متعصبان مذهب شیعه قرار نمی گرفت برای که در اون تاریخ خیلی از مشتهدان درجه اول نیز بعضی از مثلا رفتار ها و حرکات شیعان را در محرم ممنوع اعلام کرده بودند و قدغن کرده بودند در این میان مشتهد بزرگی همچون شیخ مرتضی انصاری و هاش شیخ کریم حائری نارضایتی خودشون را اعلام کرده بودند همچون این از علمای معتبی همچون همچون آیت الله شهرستانی، آیت الله بهبهانی، آیت الله سید احمد موسوی خانصاری آیت الله سید محمد،, سید محمد ازا گل پایگانی و حتی آیت الله سید حسین بروجردی با سنت های سم... به صلاح ماه محرم شیعان برخی از سنت های ناجورشون موافق نبودم بنابراین افرادی که کسایی وقتی در این مورد انتقاد میکرد بیان مورد کرده و اداوت قرار نمی گرفت چون در نظر داشتن که ایشون یک است و پایه ملایی داره و از رفتار خیلیان در ماه محرم ناراحت و لذا انتقاد میکنه لیکن از کردم پس از که دوباره شیعه پدیدار شد در جامعه کسروی انتخابات خودش رو به صورت عمیقتر شروع کرد در این مورد چهار پنج کتاب بود که موجب قتل کسروی گردید و این کتاب ها اولین کتابی که کسروی نوشت در پیرامون اسلام بود هم همیلان حضورتون نشون دادم ای پیرامون اسلام اعتقادات مسلمانان را از خدا پیغمبر قرآن و بلاخره به امامان هم می‌رسید، طبقه طبقه انتقاد کرده بود از در مورد اسلام در این کتاب می نویسد آنچه که از اسلام امروز باقی مانده است چیزی به جز خرافات نیست امروز مسلمانان مغزهاشان آکنده از هر گونه گمراهیست گذشته از آن که گمبت پرستی و مرد پرستی که رنگهای دیگر بود پرستی می باشد در میان مسلمانان رواج بیانداز می دارد رنگارنگ های رنگا رنگ دیگر نیز از پندارهای پوچ سوتیان و بافندگی های فلسفه یونان و بداموزی های باتنیان و یا و های خراباتیان و مانند اینها در میان است آنگاه راجب اعتقاد آنان نسبت به خدا می نویسد ارز کردم که از خدا شروع کرد اومد انتقادش و اقیده افراد نسبت به دینشون در مورد خدا می نویسد که اینان خدایی از پندار خود ساختند که در بالای هفت آسمان می نشیند. و جهان را با دست فرشتگان راه میبرد خدایی که همچون پادشاه خودکامه و خودخواهی چون از مردم اندک نافرمانی دید به خشم آید و بیماری و گرستنگی و زمین لرزه فرستد ولی سپس که مردم رو به سویش آرند و به لابه و زاری به پردازند خشمش فرونشیند و پتیاره بازگرداند پتیاره یعنی بلا از دیده کسگوی در فرهنگ لغات کسگوی و بلا بازگرداند این از خدایی که این مسلمانان میپندارند بنابراین در مورد خدا چون این مطلب یه راه میکند بعد میرسد البته مطلب خیلی طولانی تر از این مسائله صفحات متعددیه بنده خلاصه انتخاب کردم تا بخشمون بیشتر طولانی نباشت از اقاید خرافی مسلمانان نسبت به پیغمبر سخن میگوید میگوید که کتاب های مسلمانان پرست از داستان های نتوانستنی یعنی معجزه که به نام پاکمرد اسلام نمشن به پیغمبر اعتقاد داشت خدا به انتظری که به نام پاک مرد اسلام نوشتند ماه را دونیم گردانیده به آسمان برای دیدار خدا رفته آفتاب را پس از فرو رفتن باز گردانیده از میان انگشتانش چشمه روان گردانیده با سوسمار چخن گفته و از این در مورد این مطلب که ملایان اوصاف خارق العاده به پیغمبر نسبت میدهند، با تنز می نویسد یکی از اینان یعنی همین ملایان در عراق است که کتابی نوشته و چونین وانموده که پیغمبر و دوازده امام ستاره شناسی نو را می شناختند و آنچرا که گلیله و کپلر و نیوتن و دیگران به صد رنج پیدا کردهاند آنان میدانستند و هزار سال پیش در میان گفته های خود آنها را باز نموده است خب بعد می‌فردوس به قرآن انتقاد خودش را از قرآن می‌کنه هرچند که کسری به قرآن معتقده لیکن آن کتاب را بدون نقص و عیب نمی‌داند کسری محمد را بدون نقص و عیب نمی‌داند حضورتون ارز کردم که پیغمبر رو مثل افراد عادی میدونه پیغمبر از نظر کس طریق کسی نبوده ما خدا در ارتباط نزدیک بوده کسی نبوده موجزه داشته پیغمبر یه آدم عادی معمولی بوده بنابراین معلومات اون رو هم در اون تاریخ عادی و معلوم، معمولی میدونه اون هر چند که به قرآن معتقد است لیکن آن کتاب را بدون نقص و عیب نمی داند و چون معتقد است که پیغمبر اسلام از اغلب علوم بیخبر بودند و قرآن را هم معتقد است که پیغمبر به گفته های پیغمبر است و آن هم عاری از اغلب دانشها هست قرآن می نویسد است که قرآن در داستان زلقرنین زمین را گسترده و هموار نشان می و آن روز دانشته مردم همین بود در مورد خرافات آنان نسبت به زندگی بعد از مرگ به یک مرحله دیگر سیده از بزر انتقادش می نویسد که مسلمانان درباره باره آن جهان پندارهای بسیار پوچی را در مرز خود جا دادند کسی که مرد در گور و زنده گردد و دو فرشته یکی نکیر و دیگری منکر با گرزهای آتشینی به دست به سر او آیند و پرسشهایی با زبان عربی کنند من ربکه من نبیه که که باید به هر پرسش پاسخ دهد و وگرنه گرزهای آتشین به سرش فرو خواهد آمد کسی که گناهکار است گور او را خواهد فشرد روز رستاخیز همگی از گور خواهند برخاست و در یک بیابانی گرد خواهند آمد خدا بر روی کرسی خواهد نشست پیغمبران از این سو و آن سو صف خواهند کشید گناه و ثواب هرکس در ترازو کشیده خواهد شد پیغمبران هر یکی به امت خود میانجی خواهد بود سپس از روی پل باریک و برنده پل سرات گذشته یک دسته به بهشت و یک دسته به دوزخ خواهند افتاد آنگاه کسبری زمن اینکه دنیا و پیشرفت آن را بر طبق قوانین علمی و بر اساس علت و معلول میشمارد از نادانی و خرافه پرستی مسلمانان بیزاری می مینویسد می این جهان از روی یک سامانی می گردد و هر کاری در آن نتیجه کار دیگری می باشد که هیچ چیزی بیشوند یعنی بدون دلیل نتواند بود لیکن مسلمانان همیشه در پی کارهای بیشوند و بیرون از آین می باشند. مثلا به بیماری با دعا درمان میکنند به پیشوایان خود معجزه یا کرامت میشمارند بازگشت عیسی و پیدایش امام ناپیدا امام زمان را امام ناپیدا میگه و زندگانی جاوید خز که همه بیرون از آین جهان است باور میدارند سپس به باورهای خرافی شیعیان میپردازد این بار و مینویسد در ایران شیعیان از روی باورهای خود روزه میخوانند، سر میشکنند، سینه میزنند، مرده های خود را از گور بیرون آورده برای قم و عراق باز میکنند، بار میکنند، خود را در دیده بیگانگان رسوا گردانیده دست از این کارها بر نمیدارند، دارند. حاجیها و مشهدیها چون از روی کیش خود دولت را غاصب دانسته اند، بواسطه نیازی که به دولت میدارند. و آن دشمنی می نماین. که تا می توانند از دادن مالیات و از فرستادن فرزندان خود به سربازی باز میستند به, به قانون ارج نگذاشته شکستن قانون را قانون دولتی حکومتی را مایه سرفرازی می دانند در جای دیگر از همین کتاب در پیرامون اسلام بنده تمام این مطالب رو که میگم صفحه رو هم دانه دانه مطرحه که هر کسی خاص میتواند مراجعه کند و در پیرامون اسلام یا در کتاب های دیگه پیدا کند در جای دیگر وی علت زوال اخلاقی مسلمانان از قبیل دروغوی و زشکاری را در آداب و آین غلط اسلام امروزی میداند و می نویسد در این دستگاه اسلام نام به راستگویی و درستگویی و مانند آنها عرج گزارده نشده و نمیشود در این اسلام در هر کیسی از آن چیزهایی هست که راستگویی و مانند آن را از کار انداخته است در جایی که دین برای رفتن به بهشت است و این کار هم با خواندن نماز و گرفتن روزه و رفتن به مکه یا کربلا و مانند اینها انجام تواند گرفت چه نیازی به راستگویی و درستکاری میماند؟ به طوری که پیداست کس در این کتاب ابتدا از انتقاد اسلام شروع کرده همطور که زورتون از کردم سپس ضمن بیان زشکی های مذاهب و فرقه های دیگران بد ها و خرافات ملایان و پیروان آنان را برملا کرده است به دنبال آن اعتراض کستوی نسبت به دین اسلام و مذاهب و فرقه‌های آن تنگتر و بیپرباترگر دیده کتاب دیگری که نوشته هر کتابی بیشتر تنگه در مورد شیعیان حملش بیشتر امیدتر کتاب شیعیگری و سپس تکمی شده آن به نام به خانید و داوری کنید سند اعتداد را و قتلش را به دنبال داشت که متاسفانه به دلیل بیان و قدم چنین آدمی را کشتند کاری نکرده بود به جز کردن بنده حالا میپردازم به کتاب. بخانید و داوری کنید درست کردم کتاب شیعیگری وقتی بیرون اومد حالا حضورتون خواهم گفت بلافاسه دولت جلوش گرفت و چون جلوش گرفت آدم سرسختی بودی کسری و اونم بلافاسه در یکی دو ماه کتاب دیگری به نام بخانید و داوری کنید نوشت در مقابله با سانسوری که حکومت راجع به این کتاب کرده بود کتابش ایگری رو کسروی در این کتاب رو در بهمن ماه 1322 منتشر ساخت به دنبال آن ملایان و مردم متاسب مسلمان و نیز رجال مذهبی کشور نسبت به مطالب آن اعتراض کرده و بر علیه که وی شکایت به دادگاه بردند و پخش کتاب را ممنوع اعلام کردند. کسروی از فایدن شست و چهار ماه بعد برای توجیه عقاید خیش در پیش مردم کتاب فوق را یعنی کتاب بخوانید و داوری کنید را با توضیحات بیشتر انتشار و به داوری مردم واگذار کرد خود در این باره می نویسد ما چنان که خواهش کرده ایم دوست می داریم هر خانه ای راستی را داور باشد هیچ سخنی را بی دلیل از ما نپذیرد و از هیچ سخنی که با دلیل است چشم نپوشد چنان داند که یک دادگاه بزرگی است که او داورش می باشد و رفتاری کند که شاینده چنان جایگاه می باشد این کتاب به طوری که از نامش پیداست نقدیست بر شیعه و به عبارت کاملتر تر کسری در این کتاب کیان و هستی مذهب شیعه را زیر سوال برده و مدعی شده است که اصولا وجود یک چونین مذهبی ساختگی و سراپا خرافات و دروغ و مردم فریبی است و مطلب را با تاریخچه مختصر پیدایش شیعه شروع کرده و اشاره می کند که شیعیگری همزمان با قتل عثمان و جنگهای معاویه و علی، علی بن ابی طالب پیدا شد و این است که در ابتدا شیعان به لحاظ اینکه یک مبارزه سیاسی در مقابل حکومت منحت و انجام میدادند انسان‌های انسانهای پاک و منزهی بودند لیکن بعدها افرادی در این مذهب بیدار شدند که حق علی ابن طالب را زایع شده پند داشتند و بر علیه خلفای راشتین جبهه گرفتند و از آنان ناخشنودی نمودند و بر علیه آنان سخنان ناشایست به زبان آوردند بدین ترتیب نخستین آلودگی در بین پیروان این مذهب پدیدار گردید سپس می نویسد دومین آلودگی مهمی که در مذهب شیعه پیدا شد در زمان جعفر ابن محمد امام ششم شیعیان بود این شخص می گفت امام کسی است که از جانب خدا برگزیده باشد و اگر مردم میخواهند رفس کار گردند باید به این برگزیده خدا گردن گذارند و فرمان برند و خمس و مال امام پردازند معتقد است کسروی که امام به معنای امامان شیعه مقدسین شیعه کسانی که از طرف خدا آمده کسانی که افراد بیگناه هستند در از زمان همین امام امام ششم جعفر صادق پدیدار شده میگه باید به این برگزیدی خدا گردن گذارند امام رو میگه و فرمان برند و خمس و مال امام پردازند که عرض کردم حضورتون کردم از این تاریخ بود که شیعان واژه امام را باز گفتم در مفهوم مقدس جانشین،, جانشین کلمه خلیفه ساختند و پیروان این شخص بودند که به امام معنای علوهیت و آسمانی بخشیدند و خود را فرقه ناجیه نامیده و کلیه کسانی را که با عقایدشان همراه نبودند کافر و بیدین شماردند کسیدی آنگاه سرگذشت مختصر امامان بعدی را به طور خلاصه بیان داشته و به داستان امام زمان میرسد. رسد و می که پس از مرگ حسن الاسکری یا آزده امام شیعیان در بین پیروانش اختلاف پدیدار شد گروهی امامت را تمام شده انگاشتند دسته دیگری برادر او جعفر را به امامت برگزیدند تعداد دیگری مدعی شدند که از او فرزندی پنج ساله باقی مانده است که جانشین وی می باشد و او را امام دوازدهم نامیدند و تاریخ مذهب شیعه دوازده امامی از این زمان شروع میگردد. این بود بخش بیست و که حضور بینندگان گرامی بیان کردم و بخش های بعدی رو در آینده ارائه خواهم داد و در این بخش ها ادامه خواهیم داد که کسب در این کتاب بخانید و باوری کنید چه نوشته و چگونه با شیعان در افتاد و چگونه به رضل رسید؟ سپاس از شما